هزار افسان برنامی از گروه جوان و فرهنگ به نام خالق افسانه و حقیقت آن خدای یگانه مهرافرین سلام افسانه ها و قصه ها سرشار از تخیل و تخیل ما رو هم پروبال میدن و همیشه در قلب ما جای میگیرند. افسانه ها و قصه های عامیانه هر کشوری آینه تمام نمای افکار و سنن و عقاید اکثر مردم اون کشورها در حال و گذشتن و ما افسانه این هفته ما افسانی ایرانی به نام افثانی شاه عباس برگرفته از کتاب قصه های آمیانی مردم ایران گردآوری و تحقیق منوچه به روزی روزگاری پادشاهی به نام شاه عباس در سرزمین پهناور ایران زندگی می کرد. شاه عباس شبها لباس درویشی می پوشید دوتا کشکول روی دوشش می انداخت که توی یکی از اونها پلو میخورد و توی یکی دیگه پول می زشت. بعد تبرزینش رو در دست می و به طور ناشناس توی کوچه ها سر گذرها، و بازارهای شهر فالگوش می ایستاد و به حرفهای مردم گوش میداد. بعد حق دوست میگفت و میگذشت گذشد. شبیه از شبها شا عباس با همون لباس درویشی از جلوی خراباتی میگذشت صدای صدایه از اونجا به گوش می رسید. شا عباس با خودش گفت. برم ببینم این لوتیا چی میگن؟ بعد وارد خرابات شد. یکی از لوتیا با دیدن شاه عباس در کسفت درویشی گفت برو درویش برو جای تو اینجا نیست. ما برای خودمون سرگرمی داریم. برو بذار به کارمون برسیم. شاه عباس که میخواست هر طوری شده پیش اونها بمونه و حرف دلشون رو بشنبه به اونها گفت من براتون پلو آوردم. یکی از لوتیا که خیلی گرسنه بود فوری گفت دمت گرم، بفرما، بفرما درویش. بله، شه باز کنار لوتیها نشست و پلو رو از توی کشکول بیرون آورد و ریخت توی سینی. و لوتیها که عطر مطبوع پلو اونها رو وسوسه کرده بود، شروع کردند به شا عباس بعد از اینکه لوتی ها از خوردن پلو سیر شدن از حال و احوال اونها پرسید و گفت رفقا من فکری به نظرم رسیده. اگه اگه شا یه روز شما رو به قصر خودش دعوت کرد و خواست کمکی به شما بکنه شماها چه چیزی از اون میخوایین؟ درخواستتون چیه؟ یکی از لوتی پوسخندی زد و گفت <تصالت> ای بابا شا عباس سرگرم کار خودشه کی به فکر ما لوتیا است یکی دیگه از لوتیا گفت من از شا عباس میخوام یه پولی به من بده تا یه گوشت بخرم و بدم زنم یه حلیم درست و حسابی بپذو و بخورم یکی دیگه گفت من دلم میخواد شا عباس یه پولی بده و بزنه پشت گردنم و بگه برو خراسون زیارت و پابوس مامرزا و یکی دیگه از لوتیا گفت من دلم میخواد شا عباس اونقدر پول به من بده که زندگیم روبرا بشه و دیگه از روی زن و بچم خجالت نکشم خلاصه هر کدوم از لوتیا چیزی گفتن نصفه هاگی شب بود که شاه عباس از لوتی ها خداحافظی کرد و رفت برحال صبح شاهباس به جارچی ها دستور داد که جار بزنید که لوتی های خونه فلان کوچه که در یه لطی داره بیان غست من کارشون دارم خبر به گوش لوتی رسید اونا دور هم نشستن و از همدیگه پرسیدن که شاهباس با ما چی کار داره از کجا معلوم که ما رو بشناسه و بدونه که ما دیشب اونجا بودیم کسی هم اونجا نبود که برای شاه عباس خبر ببره پس ما میتونیم نریم در این موقع یکی از لوتیا گفت آ شاید شاید اون درویشی که دیشب توی خرابات برامون پول آورده بود برای شاه عباس خبر آورده باشه آره کار کار خودشه یکی دیگه از لوتیا گفت ای بابا این چه حرفیه مگه اون درویش بینوا رو به قصد شعباس را میدن که بره و حرفای ما رو اون بگه نه بابا کار اون نیست بله لوتیا توی فکر بودن که چطور این خبرها به گوش شعباس رسیده لوتیا از ترس به قصد نرفتن ولی فردای اون روز ماموران قصر برای بردن لوتیه به خرابات رفتند و اونا رو بازور به غصر بردن بله شاه شاهباس لوتیه رو که از ترس داشتن می بزور به قصر به نزد شاه عباس بردن شاه یکی از اونا رو صدا زد و گفت خب لوتی بگو ببینم تو چه آرزویی داری لوتی به تپ پته افتاد و گفت اه اه من قربان من آرزوی جز سلامتی قبله عالم ندارم شاه گفت لوتی دروغ نگو بگو ببینم چه آرزویی داری لوتی گفت قربان هیچ هیچ آرزویی ندارم شاهاباس گفت جلاد بیا گردن این لوتی بی آرزو رو بزن لوتی ترسید و گفت چشم قربان چشم چشم آرزوم رو میگم من من آرزو دارم که قبله عالم قدری پول به من بدن که گوشت بخرم ببرم خونه، زنم یه حلیم حسابی به پز من بخورم و دلی از ازا در بیارم. این, این،, این آرزوگ من قربان شاه باز که قبلا دستور داده بود، حوزی پر از حلیم آماده کنن گفت که لوتی رو بر سر حوض پر از حلیم ببرن تا اون هر چقدر که میخواد حلیم بخوره. لوتی رفت سر حوز تا میتونه سریم خورد. اونقدر خورد و خورد که دیگه شکمش داشت پاره میشد. شا شو عباس گفت آدم شکمو به درد هیچ کاری نمیخوره. اونو بندازین توی حوز حلیم. شا به لوتی بعدی گفت خواب بگو ببینم تو چه آرزوی داری؟ لوتی بدون معطلی جواب داد قربان من؟ من آرزو دارم که حضرت یه پولی به من بدینی و بزنین پس گردنم و به من بگید برو زیارت و پابوس امام رضا شاه باز گفت که اینطور میخوای بری زیارت و بعد دستور داد که پولی برای زیارت لوتی به اون بدن و یه اردنگیم هم به اون بزنن به لوطی بعدی رسید و اونم گفت که برای سر دادن به زندگیش به پول نیاز داره و شاه باز هم پول حسابی به اون داد که بره و زندگیش رو سروسمونه. بله لوتیه به آرزوهاشون رسیدن یه شب دیگم شاهباس لباس درویشی خودش رو پوشی یه کشکول پر از پولو روی دوشش انداخت و مقداری هم پول توی جیب لباسش گذاشت و را افتاد سرگذرها و به حرف مردم گوش داد سرگذر سه تا دختر جوان رو دید که ایستاده بودن و با هم داشتن حرف می زدن. شاهباس ایستاد و به حرف های دختران جوان گوش داد. یکی از دخترها گفت من دلم میخواد شاهباس پولی به من بده که جهیزی مفصلی برای خودم دست و پا کنم. دختر دیگه گفت آه منم دلم میخواد شاهباس پولی به من بده که به زیارت کربلا برم. خدای من چقدر دلم یه زیارت درست و حسابی میخواد دختر سوم گفت من دلم میخواد خدا اون قدر به من بده که شا عباس بیاد بخچه منو تا دم هممون ببره دخترا از شنیدن این حرف تعجب کردن و گفتن وا این دیگه چه آرزویه شا عباس بیاد بخچه هممون تو رو هم کنه چه پر مدعا راستش رو بخواین شا عباس هم از شنیدن این حرف دختر عصبانی و ناراحت شد ولی به روی خودش نیورد و چیزی نگفت حق دوستی گفت و از اونجا دور شد فرد و صبح شا عباس اولین کاری که کرد این بود که به مأمورها دستور بده دخترا رو به قصرش بیارن. دخترا از اینکه عباس اونا رو به قصر فراخونده هم تعجب کردند هم ترسیدن که چی شده شاه عباس با ما چی کار داره؟ خلاصه سه دختر به دستور شاه عباس وارد قصر شده سه دختر وقتی وارد قصر شاه عباس شدن از اون همه شکوه و جلال قصر دوچار حیرت شدند. شاه یکی یکی از اونو پرسید که چه آرزویی دارن. دختر اولی گفت. من دلم میخواد شما قربان اونقدر من پول بدین که با اون بتونم. هیچ جهیزی درست و حسابی برای خودم دست و پا کنم. بعد با شرم اضافه کرد. جناب شاه، من الان دو سالی که نامزد کردم ولی هنوز نتونستم جهیزیم رو تهیه کنم. شعباس سریع تکون داد و گفت برو دختر جان برو که خیلی بیشتر از یه جهیزی بد پول میدن دستورش شد دادم انشاءالله که خوشبخت بشی دختر که انتظار چنین چیزی رو نداشت با خوشحالی گفت دست شما درد نکنه اینشاءالله شما هم سالیان سال به خوبی و خوشی پادشاهی کنید قربان شعباس از دختر بعدی پرسید خب تو بگو ببینم چی دلت میخواد دختر گفت جناب شاه من من آرزوی یه سفر زیارت کربلا به دلم مونده ولی پول ندارم شاه اباس گفت برو برو پول زیارتت رو بگیر و برو برای زیارت دستورش رو دادم دختر با خوشحالی گفت خدای من من هیچ وقت این لطفتون رو فراموش نمی کنم. به محض رسیدن به کربلا براتون دعا میکنم کنم. و بالاخره نوبت به دختر سوم رسید. شعباس از اون پرسید. خب، تو چی آرزو داری؟ دختر گفت. ای پادشاه از خدا پنهون نیست. از شما هم پنهون نباشه. هر کاری میخوایین بکنین بکنین. من آرزو دارم که خدا اونقدر به من بده که شما، بله بله شما، بیاین و بخچه هموم منو تا دم در هموم هم کنین. شعباز از دلیری و شجاعت دختر خیلی عصبانی و ناراحت شد و پیش خودش گفت، اگه مرد بود، همین الان دستور میدادم، گردنش رو بزنن ولی حیف حیف که اون فقط که ضعیف هست بعد شعباز با صدای بلند گفت بیاین این دختر گستاخ رو از جلوی چشمای من دور کنین اونو به محلی دور از شهر ببرین که گستاخی کردن یادش بره بعد مأمورا هم فورا دختر رو به محلی دور از شهر بردند تا به شعباس گستاخی یادش وره گستاخ رو به محلی دور از شهر بردن و اونو توی یه خراب انداختن دختر تا نزدیکی های گرسنه گرسنه و تشن اونجا موند بعد با خودش گفت باید یه جایی درست کنم امشب اینجا باید بخوابم وگرنه حیوان وحشی تکه پارم میکنن. تا فردام خدا کریمه و همینطور که مشغول پس و پیش کردن سنگ های توی خرابه بود یه دفعه از زیر سنگها ها خم خسروی پر از پول و سکه پیدا کرد. دختر با خوشحالی و ناباوری خوم رو برداشت و به گوشه از خرابه رفت. در این موقع مرد شوترداری رو دید که با شوترهاش برای کندن به اون اطراف اومده بود. فورا اونو صدا زد و گفت آهای امو به من کمک میکنی؟ مرد شوتردار به دختر نزدیک شد و گفت چه کمکی؟ دختر گفت بیا بیا این سکر رو بگیر و به شهر برو و چند نفر عمله و بنا بفرست اینجا بگو فردا اول وقت اینجا باشن میخوام برام یه خونه بسازن و پول خوبی هم بگیرن بعد پرسید این کار برای من انجام میدین؟ مرد شطردار گفت البته دخترم البته فردا صبح عمله و بنا میفرستم اینجا خیال تخت باشه و بعد از دختر خداحافظی کرد و رفت فردا و اون روز صبح زود به و عملها اومدن و شروع کردن به ساخت و ساز و قصر باشکوهی ساختند بهتر و زیباتر و باشکوه از قصر شعباز کلفتها و نوکرها بروبیای زیادی توی اون قصر براه انداختند مردم از اون شهری که شاه عباس دختر رو بیرون کرده بود و شهرهای دیگه برای تماشای قصر زیبا و بزرگ می میومدند خلاصه این خبر به گوش شاهاباس هم رسید شاه عباس با خودش گفت باید برم ببینم این قصر چجور قصریه صاحبش کیه. و بعد بلند شد و با همون لباس درویشی تبرزین به دست و بر دوش به راه افتاد و رفت طرف قصر دختر شا باز دم قصر که رسید دخترونو شناخت و با خودش گفت شک ندارم که این درویش خود شا عباسه به بعد بخچه همومش رو آماده کرد و رو به درویش یا همون شعباس عباس کرد و گفت «امو درویش این بخچه منو تا دم در همون با خودت بیار درویش هم چهار ای جز انجام دادن این کار نداشت بنابراین بخچه رو زیر بغلش گذاشت و پشت سر دختر به راه افتاد تا دم در همون. دختر گفت «امو درویش همینجا بمون تا من بیان بیرون بعد رفت توی هموم آبی به سر و صورتش زد زود برگشت و دوباره یه هموم رو داد دست درویش و گفت حالا پشت سر من بیا وقتی دم در غصت رسیدند دختر گفت صبر کن الان انعامتو میدم بیارن شعباز میخواست بدون این دختر کیه هدفش این بود که بیشتر اونجا بمونه و از کار اون دختر سر در بیاره ولی نمیخواست وارد قصر بشه. جلوی در قصر ایستاده بود که یه دفعه از بالای غصر کموندونه انداختن و درویش رو بالا کشیدن و بردن توی اتاق. دختر به درویش نزدیک شد و گفت شا شما منو نمیشتسین؟ من همون دختری هستم که منو از شهر بیرون کردی؟ من توی این بیابون سه تا خومه پر از پول و سکه پیدا کردم همونطور که میبینی به آرزون رسیدم بله روزگار دیگه گهی زین به پشت و گهی پشت به زین شهباز گفت ای دختر جا من دیگه پادشاهی نمی کنم. پادشاهی سزاوار توه تو باید شاه باشی، نه من دختر یکی از خمهای پر از پول و سکر رو به شاهباز داد و گفت بیا اینم انعامی که بابت حمل بخچه ی من طلب داشتی شاهباز انعام رو قبول نکرد و چند روز بعد دختر رو به همسری اختیار کرد و دختر سوگولی قصر باز شد افسانه ایرانی شاه عباس رو براتون نقل کردم از کتاب صحای عمومیانه مردم ایران گردآوری و تحقیق منوچهر سرینی. مکسلوتی محقق سوئیسی افسانه ها میگه قهرمان افسانه هرگز به تنهایی شکست ناپذیر نمیشه زیرا هرگز کاملا متکی به خود و خودکفانی است، هر چه میکنه با کمک موجودات متقابل و همکاری و کوشش دست جمعی و این نکته بسیار مهمه چرا که تنها چیزیه که میتونه معجزه‌گر باشه این برنامه کار مشترکی است از نویسنده زینت صالح ویراستار سید فری برز نور بخش. اجرا مهران دوستی صداوردار الهام حجب افکن تیه کننده زهرا عبدالله زاده با افثانی دیگر بدرود